همی بینم در جهان تاج و تخت بزرگان و شاهان پیروز بخت چو کاووس خود کامان در جهان ندیده کسی از کهان و مهان یک اندیشه او همین نغز نیست تو گویی به سرشندرون مغز نیست چو دیوانگان است بی هوش و رای و هر باوت کاوید به جنبت جای ند جان و خرد چنین برتر اندیشه برنگزرد ایران زمین سلام شما رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو به رو میشنوید من همین رضا هدایتی راد هستم و یک شب به شب های ما با حضور آقای دکتر فیدون جنیدی هست سلام عرض میکنم شب شما بخیر درود بر شما شاد زیوید بهزیوید ان شما هم همینطور ما همیشه این شادی رو از شما داریم این آرزوی شما در هر سلام شادی رو خداوند برای مردمان برای همه باشندگان، برای همه جانداران آفریده باشد که همه گان از شادی برخوردار باشند ما امشب با آقای دکتر فیضان جنیدی درباره یه بخش خواهی ما صحبت کردیم درباره جشن مهرگان امشب آقای دکتر گول دادن که کاملتر می این بحث و این موضوع رو و همینطور ادامه داستان رستم و صحراب من قبل از این که آقای دکتر بفرمه فرماشوششون رو بفرمایند. مطلب رو شروع تلفن های برنامهد خدمتون عرض میکنم. دو 400،, 220, 400 220, 588, 20، چهارصد 400، و5، دو و 20، چهارصد 85، دو و 20 و 20 و شماره پیامک ما ۳ هست. 3558. پایگاه اطلاعاتی ما یعنی همون سایت اینترنتی ما www.radiofarhang.ir شما از طریق ماهواره هم میتونید برنامه ما رو بشنوید تو اون بخش رادیو ها روحات برد رادیو فرهنگ رو پیدا بفرمایید. برنامه ما رو خیلی خوب میتونید بشنوید خب با تمام وجود گوش هستیم آقای دکتر جون دیگر میشه از <تصحیح> هفته پیش همچه منتظرم من خودم که ادامه درباره مهر و مهرگان بخشی سخن گفتیم اکنون این بخش در حقیقت کامل کننده گفتار هست که درباره جشنهای ایرانی جشنهای فصلهای ایرانی با هم صحبت بکنیم این جرس نامشون همبار هست در زبان پهلوی گاس یعنی گاه انبار کردن در بین مراقیان در علموت هم که هم شناخته میشه یعنی گاه انبار کردن مسئولات در این زمان ها که خوب بیشتر زندگی کشاورزی بوده مردم محصولاتی رو که از زمین بدست دست می آوردند اینا رو انبار میکردند و در جشنها بخشی از اون رو به دیگران می اگرچه هیش کس نیازمند نبود و همه بر روی زمین کار میکردند و مادر زمین سپندارمز زمین با مهر خودش زندگی همه جهانیان رو اداره میکرد و میکنه با این حال آین این بود که باید درگه همبارها مقداری از این محصولات رو به دست رو به دیگران ببخشند و البته بیاده ترگذاشتگان و نیاکان خودشون هر کسی این جشن رو میگرفتند نخستین که همبار در پونزه هم عدیبشما بود نامش در اوستا میدیو زرم بود که یعنی میانه سرسبزی چون پونزه عدیبشما درست میانه بهاره یعنی درست میانه سرسبزیست و در این زمان برخی از محصولاتی که زود بود مثل یونجه و مثل شبدر و مثل بعضی از میوه های ترش به دست و این نقصین که هم بار سال بود گه همبار دوم در پونزه تیرماه انجام میشد که معیدی و شهیمگاه بود که یعنی میانه گردآوری دانه ها یعنی دانه خوراکی در پونزه همه تیر ماه بخشش به دست اومده بود و بخش اعظمش در شهری ورماه بعدی به دست می که اون بود پایی یعنی تمام دانه ها به دست اومده پس از پایی جشن مهرگان برگزار می شد که خب جشن همطور که در جلسه پیش ارز کردم این جشن ملیه ایرانی است که در حقیقت ایرانیان پس از تحمل هزار سال ستم بابلیان و بوری و بیورست یا به آزادی رسیدند و البته مسائل دیگه هم در بین بود که به نیروی ایرانیان یاری بخشید و شما میبینید که در شاهنامه زهاک کوشته نمیشه زحاک که به صورت یک اجده ها یعنی آتششان معرفی شده وقتی که ایرانیان به نیرو می رسیدن اون اجده ها در دهانه و در لوله آتش در چاهی که در اونجا هست به بند کشیده کوه شود در کوه, کوه خب این جشن در حقیقت بود بین دو گهنبار یکی پیتی و جشن پس این که در آبان ماه برگزار میشه به نام ایاس. امروز میگن ایو سرم، اما این در ابستا بوده. ایو فریما فریما یعنی خوشبختی. یعنی خوشبختی به کمال میرسید. هم دانه ها در سه بخش یک شده, شده. و هم اینکه پیروزی فریدون بر زاهک، پیروزی آریایان بر بابلیانه و هم اینکه آماده بشن برای یه خوشبختی کامل که همون نام ایو باشه یا ایو سرمه بگفته میشه بعد از اون یه جشنیدی بود که نامش بود میلیارم یار به زبان عویستایی یعنی سال همون که در زبان ایوزی شد ییر اگر شما ییر رو نگاه کنید با ییل تورانی هم یکی و ییر رو اگر یه به سه تبدیل بشه که میشه مثل پس و پی و ری به تبدیل بشه ییر میشه سیل سال متفاضع شدی؟ بله بل بل. بله یه به سه ری به و ای هم تبدیل به آ مثل مثلا الان ما هنوز داریم در خیلی از زبانهای ایرانی افتاد رو میگن افتید آ تبدیل به ای شده بنابراین یار عوستایی انگل... که در انگلیسی شد ییر در حقیقت همونه که در زبان فارسی امروز سال گفته میشه و اما در زمان باستان گاه شماری ایران دو فصل داشته یکی در حقیقت تابستان بزرگ یکی زمستان و بزرگ دو دو شش ماه بوده نه یه هفت ماه و یه پنج ماه آه، یه ماه. از اول فروردین طبعی. تا پایان میزد و تابستان میشد. از بعد از مهر که ابان ماه باشه تا اسفن ماه پهی ماه میشد زمستان بزرگ پونزه دی ماه درست میانه این دو تاست. این که همبار بود ناشد میدیار میدی یعنی میانه هفته پیش گفتن میدی همونی که میدان ازش ساخته شد در فرسی حتی میان ساخته شد و همون که در انگلیسی میدل گفته میشه یعنی میانه 15دهده ماه میانه این زمستان بزرگ بود که جشن میدیارم بود در این جشنم گروهی از دانه‌ها، ها از یعنی فرآورده های گیاهی به دست میرسید مثل چغون و رو و هویج و چیزایی که در فصل سرد به دست میاد یعنی مادر زمین در فصل سرد و یخوندان هم فرزندان خودش رو فراموش ان که دیگه که همبار بود و به پایان می رسید پنج روز آخر سال چون در ایران باستان چندبار بار گفته شد همه ما ها سی روزه بود و دوازده سی روز می شد سیصد روز پنج روز پایانی رو که همبار میگفتن بیاد روانها و روهر در پنی روز پایانی پ پای پای می و این پنج روز باید همه جامهه ها نو باشه همه به گرما بهرفته باشند تمیز باشند. و در حقیقت گشکودی کردن، تمیز کردن، ها رو تمیز کرده باشن هنوز در تبرستان و مازندران و گیلان و بخش‌های از آذربایجان هنوزی رسم است. ما از این کارو برامیکونیم، خانواده خانه تکانی می‌کنن، تمیز ای بله، این خانه تکانی میشه، اما این که برن یه جای گیل سفید برن، خونه ها رو سفید کنن. هنوز در رسته های آذربایجان، تبرستان و گیلان این هست و این وظیفه خانوماست. یعنی بانوون بر این کار بکنن. این یادگار زمان درخشان مادر است که خانه متعلق به مادر بود او مادر و زن و دخترها باید سفید کنن تا اینکه روان و فرور در گذشتگان وقتی میان ببینید که خونه تمیز و آرایش شده است و تنور گرم و اینکه ما امروز متوجه نیستیم اما بزرگترین بزرگ بزرگداشت بزرگ داشت و در تا پنج و سه سال پیش برای تنور خونه مردم قائل بودن چون این نان پخته. با گرم بشه نان پخته شد و نان برترین غذای ایرانی بود با همین ترتیب که شما حتی میبینید که در نوشته ها مثلا نثر به حقیقت‌ها نان خورده شد نان خوردن یعنی یعنی غذا خوردن یعنی اگر هر چیزی هم با نان خورده شد، فقط نان رو میگفتن در شاهنامه هم همه جا همید. چون نان خورده شد جام و می خواستن معلومه که در این جشنی که شام میگیره مهمانی که میده، فقط نون خالی رو نمیخورن در خراسان هم هنوز همین هست میگن نون, نون تو بخورده ای؟ یعنی خوراک تو خوردی؟ تو خب این نان که نخستین فراورده بشر بوده از صورت آرد به صورت نان از صورت دانه به صورت نان در میوده محترمترین خوراکی بوده و خب هنوز هم خوشبختانه ایرانیان نون رو زیر پا اگر بیفته میبوسن کنار میذارن و احترام نان رو و در بسیار از خانواده سنتی ایرانی پیشتر از اینکه بخوان دست ببرن به خوراک اولی لغم نون خورن به اعترام نان بعد نان و نمک میخورن بعد میگن می نان و نمک مهم اینه که همین فقط نان و نمک میگن نه چیز دیگه نمیگن ما مثلا فرض کنیم که گوشت شما رو خوردیم یا سبزی شما رو خوردیم یا نمک شما رو خوردیم در هر صورت این تنور روشن باشه اجاق روشن باشه بوی خوش در فضا پراکنده بشه، بال پوشه بموها ما ها اسپند می و همگان خوش بودن به دلیل اینکه روانها روان ها و فروهر در گذشتگان و نیاخمان که میان به این خانه ببینن که در این خان... خانمان شادی هست و با شادی برگردن به جهان مینوی این شش جشن گهنبار ایرانی بود مهمتر از همه اونی که این نام گهنبار یا نگاه انبار کردند، هم در کتاب بزرگ دین کرد که به خط فعلوی باقی مونده اومده که از نیست که در زمان جمشید انجام شد و هم اینکه ما در کابوش اخیر در تپه زاغه که یک شهر هزار سال پیدا کردیم می بینیم که خانه ها همه انبار دارن تنور دارن و انبار دارن وقتی که انبار دارند و که انبار در زمان جمشید بود و هزار سال پیش هم زمان جمشید هست که زمان جمشید با آمدن بابلیان و با فوران زماوند که هفتزار سال پیش بوده همراه بوده پایان زمان جمشید هفتزار ساله و اون خانه شهری که در تپیزاق قزوین پیدا شده متعلق به زمان جمشیده میبینیم انبار هست گفتارها هم مسلسل همه هم رو تایید میکنن همه هم رو تاکید میکنن که انبار تراورده های گیاهی در زمان جمشید اتفاق افتاد و هنوز که هنوز بعد از این چند هزار سال ایرانیان این رو در هر صورت برگزار میکنن و با شادی و سپاس از خداوند و مادر زمین سپن که این محصولات رو بنا داده بله یه پیامکی بود هفته پیش من یادم رفت بخوانم و اون پیامک این بودش که در زمان کورش اگر خط میخی بوده ایا یا زبان, زبان چگونه بود؟ یه همچین پرامه که بود من برای خودم هم مطرح بود من متصبه بودم بینم که بعضی هم زبان میخی زبان که میخی نمتونه باشه. خط میخی بله خط میخی بوده زبان پارسی باستان بوده اون زبانیست که خوشبختانه از کروش هم یه چند جمله باقی مونده البته دست روزگار و احتمالاً اه... یعنی در زمان darjush این خطا از بین رفته، خطایی که از زمان کوروش بوده باشه ولی خوشبختانه چند جمله از او باقی مونده، زبان زبان فارسی باستانه. زبان فارسی باستان خیلی خیلی نزدیک به اوستا و خیلی نزدیک به سانسکریت، یعنی این هشت تا زبان خیلی باستانیه و این زبان ها تو گناه های صرفی خیلی مشکل دارن، 72 گونه صرفی در نام دارن و این خیلی خیلی کار رو مشکل میکنه. اما زب... وقتی که به زبان پهلوی می که از زمان عرشکانیان زبان رسمی ایران میشه، شه می بینیم که معنیس مذکر برداشه میشه، گونه‌های گونه های صرفی زبان برای بیان داستان و گفتار ها بسیار ساده میشه. البته من معتقدم که زبان پهلوی پیشترم بوده اما در زبان فارسی باستان و وستایی است که به گونه رسمی در کتاب و در فرمان شاهان به کار پرسیدن واژه غذا به چه معنی خو واژه غذا واژه عربی معادلش خوراکه در کردستان میگن خوراک در مرت پهله بود خوریشین و خوراک این آک پسوند سازه. مثل مثلا رواک یعنی روا کافش در فارسی افتاده شده روا گو در فارسی شده گویا ویناک در فارسی شده بینا این وی که در وین پهلاوی هست در کردستانم هنوز هست در تبرستان مازنداران هم میگن ببین ببین یعنی ببین و در کردستان غربی من دیدم که به عکاسی میگن وینگری یعنی یه چیزی که با دیدار مجسم میشه عکس عکس عربی رو کردن برای میگن وینه وینه یعنی آکسوسی این آک پاسمند فاعل بنابراین خوراک یعنی چیزی که اه، اه، یعنی اه، کار خوردن رو انجام میدن باش فارسی غذا عربی تغذیه عربیه با عرض سلام در استان اسفهان شهرستانی به نام فریدون و روستایی به نام مشهد کاوه وجود دارد که, موید... که میگویند فریدون و کاوه از این شهر و روستا هستند و قبل کاوه در مشهد کاوه وجود دارد اون, اون شهر فریدن هست اما مشهد کاوه هست ما یک کاوکالی هم داریم در همون لورستان و بختیاریست دو, دو تا نام داریم یکی مشهد کاوه یکی کاوکالی که این نشانه نام همون کاوه هست و, و اما اون نام اون شهر فریدن هست که پس از اینکه اررمیان رو شاهعباس به زور مهاجرت داد آورد به طرف ایران بخشی از ارمنیان رفتن به شهرستان و فریدن و روستاهای اونجا رو آباد نگه داشتند حالا من اکنون خبر ندارم ولی میدونم تا سی چه سال پیش اررمیان در نزدیکی فریدن زندگی میکردن تلفن های برنامه دو هشتاد و پنج تون گفتم خب آروم میگم و بیست چهار هشتاد و پنج دویست و بیست پانسد و هشتاد و هشت دو سفر و شماره پیامک سی هزار پانسد و و هشت شماره پیامک ماست پیش آقای دکتر جانای عزیز لباس سفید پوشیده بودن ازشون پرسیدم که چرا لباس سفید پوشیدید ایشون فرمودند که به خاطر جشن مهرگان هستش دیگه آین های این جشنیه چه مراسه میداره چه کار ما این شادی به صورت هستش خب شادی که به حقیقت لازمه زندگی همه جان دارانه چون این وقتی که برگذیر ازش باد میرقصه این شادی ابراز میکنه. آه در دشتها جست و خیز میکنن برره با مادرشون عش قضی میکنن. در سرتار سر کشورها جانوران کوچک زندگی میکنن در آسمان پرندگان با هم ابراز مهرو شادی میکنن اصلا در اندیشه ایران و باستان این بوده که خداوند شادی رو بخشیده به همه باشندگان جهان و به ویژه مردمان و اینکه در جشنها به ویژه می که از شادی برخوردار بشن خود واجی جشن از ریشه یز عبستویی گرفته شده یعنی ستایش که در حقیقه ستایش خداونده یا ستایش داده های خداونده این یز در واجی یسنا یسن شد و یه تبدیل به جه میشه مثل یوسف و جوزف و سه تبدیل بشه میشه شد جشن جشن در حقیقت واجهیه که در اون ستایش میکنن خداوند رو و در داده های خداوند رو اما ببینید که این جشن چقدر با شادی هم رو بوده که امروز ما از جشن فقط مفهوم شادی رو میگیریم و خب مهرگان جشن پیروزی ایرانیان و دشمن هیزار شوخی نگیرید این موضوع رو هزار سال ستم یعنی در جهان سابقه نداره هزار سال ستم جوانای ایران رو به تناب میبستن میبوردن بالا روبری دماوند و البوز میخشتن این،, این یک شگفتی عظیم تاریخی که بر جهان هیچ کشوری نرفته الان انگلستان فقط چند سال زندگی داره هشتصد ساله فرانسه هزار ساله هزار سال فقط ما ستم کشیدیم و این نشانه اونه که میشه از ستم فرمانروایان بیدادگر حتی اگر هزار سال باشه انسان نجات پیدا بکنه خب این همه هدایایی است که در جشن مهرهگان بین دو گهمبار نصیب ما میشه و مهمترین موضوع در جشنها شادی است که همیطور که گفتم معنیش معنیشو عوض کرده با هم دیگه مهرگان و مهر و ماه مهر بر ایرانیان به شادی بگذره به خرمی بگذره روز مهر و ماه مهر مهرو جشن فروخ مهرگان این در حقیقت یه پیامی است که برای جهانیان اومده که به مهر بپندید پیمان و راستی و شاد باشید شادی شما رو آرزو می‌کنم در هر گوشه از ایران فرهنگی که هستید ما یوتیوب همین جایی به همدیگه میدادن تو اینجاست خوی نخوی حدیه یه چیزی این خیلی خوبه خیلی ایران بوده یعنی ایرانیان این اخلاق دارن که حتی یه چیزی رو میدن با خوشحالی میدن یه چیزی هم که میگیرن با خوشحالی میگیرن این چیزی که از زمان رو باستان بوده من یک در یک نویسنده چینی حدود 2000 سال پیش کتابی نوشته یاد داشتم برداشم برای داستان ایران که بر اونجا با یتی گفت که طرف غرب ما یک کشور خیلی خیلی بزرگیه که من از اونجا عبور کردم در همه جا راهها امنیت داره چون راهها امنیت نداشته در جهان چونه باشه این فقط ایران بوده راه ها امنیت داره و شما به هر جا که برید با آغوشه باز شما رو می‌پذیرن و شما رو مهمان میکنند و مهمانین هم اینه که یکی بار گفتم بازم میگم در حقیقت آینه فرخنده زمان مدرسه زمان فرانک و مادران بزرگوار ما که مهمان رو میپذیرفتن و که هنوز خوشبختانه در نزد ایرانیان این زنده است به شما رو مهمان میکنند چند روز با شما شما رو در حالت خوراک میدن و به شادمانی وقتی امکنی بخواید برید انبوهی نان و خوراک و حتی اسب و جامعه اینا به میدن که شما این بدر غیراتون باشه و نویسنده حدود دو بیش با شگفتی یاد کرده از این کشور بزرگ غربی که ایران باشه که چطور اینا تو جاده هم دیگر نمی مال هم دیگر نمی و شما رو به زور به خونه میبرن و وقتی هم که میرید به زور به شما یه چیزی میدن که ببرید این همه آیین های ایران رو باستانه که دادن هدیه و گرفتن هدیه که هر دوشم نیک و نغز بعد اگر مویر باشید من فکر کنم در مورد مهرگان صحبت کردیم در زمان باقی مانده و تلفن هایی که حالا دوستان زنگ زد این تلفن ها آخر آخره باشه بشنویم در ادامه درباره داستان رستم و صحراب صحبت میکنیم اما اینجا یه مقداری از پیامک ها رو بخونم پیامک زیادی اومده و جشن مهرگان رو تبریک گفتن خدمت شما استاد زیاد هستش این پیامک ها تبریک به مادر میهن تبریک به ایرانیان بله بعد در مورد آن در مورد معنی سیاوش یا سیاوخش پرسیدند چه معنی شما فرمودید در برنامه اگر صلاح بدون بارم در بوده سعی بتوید این بگم مثلا سیا یا طرفه سود سیاورش نه یعنی اصل سیا البته اینها اینطور نامها رو بعدن همه کردن دارندهی اصل سیا اما این اسم میدونی که اون سوفوستانی که از ایرانیان از ایران رفتن به ماجررت کردن به آمریکا هنوز نام جانوران رو جانوران خوب و سسوده رو بر روی فرزندان میگذارن این دور نیست بنابراین سیاه و ورشنه یعنی اسب یعنی سیاه که لقب سیاه بخش بوده با درود فکر میکنم تا به حال بیش از ده بار پاسخ این پرسش را پرسیدم اما نخاندید خواهش میکنم از استاد بخواهید معنای شهر ناوان را سپاسگزارم. سپاسکوزارم سپاسکوزار شما فرزند ایران از بختیاری. شاد باشید درود و خاک بختیاری و به مردمان و بختیاری قان پسند این شهر همون گان و کان و شان به معنی جایگاهه که تبدیل به قان شده مثلا در نوع قان مشد میبینیم که هست در بیل قان بیل قان الان من بیاد دارم فکر میمونم از آزار باشه اینا قانها همه به معنی گان یا کان یا جایگاهه و اما نا در بعضی از پیشمندها ما انقدر گذر زمان داریم که سایده شدن و ساده شدن که نمیتونیم از اونها مفهوم در بیابیم. من مثال میزنم یک شهر کوچیکی در کردستان غربی داشتیم که اسمش بود مرکندو بعدا این شهر رو کردن سلیمانیه. که اکنون مرکز استان سلیمانیه کردستانه. و بعد یه شهری داشتیم به نام مرکند در تاجکستان گرامی و میبینیم کشوری به نام ازبکستان شده به فرمان شخصی به نام استالین اما بالاخره اینجا یک استان بوده و یک بخش از ایران بزرگ بوده این شهر داریم سه مرکند خب وقتی که مرکند و مرکندور داریم این سه به انقدر خلاصه شده که ما ازش معنی نمیتونیم بفهمیم. در ناغان هم همطور آن پسپند یعنی جایگاه و این نای پیشینش سایده شده کوچیک شده نباید در, در... یعنی درباره مفهوم اون و معنی اون شتاب ورزید درود بر مجری محترم و مهربان آقای هدایتی و دانشمند محترم استاد فریدون جنیدی از آذربایجان عزیز سخن برانید که من خلخالی که من خلخالی از دل از دل آرزومند سخنانی درباره وابستگی خوانی نظامی و یادگارهای فرهنگی آذربایجان و آران به فرهنگ و زبان ایرانی هستند آیا اکبری عزیز از خلخال درود به خلخال درود به آذربایجان گرامی و آذربایجانیان آذربایجان در حقیقت سالها سال قبل ایرانیان بوده به خاطر آتشکده کردن و آذربایجانیان در حقیقت یکی از اصیلترین تیره های ایرانی هستند که بهترین ها و بهترین شیوه زندگی فرهنگ ایران و باستان رو در حقیقت نگهبانی کردند و همکنون هم نگهبانی میکنند و درود از همه ایران به آذربایجان شاد باشید با درود به استاد سایت بنیاد عوض شده است خب این پرسشی که مربوط به برنامه نیست متاسفانه فرزندان و بنیاد یه دگرگونی در کارشون اتفاق افتاد نتونستن به موقع اون حقل عضویتی رو که برای سایت هست اون رو به یک کسی از آمریکا این رو گرفته ما درصد هستیم که به زودی با او تماس بگیریم که دو مرتبه اون رو آزاد کنه که ما بتونیم برا... و زندان فرزندان و بنیاد درصد داشتند که برنامه پانکوه اینترنتی رو گسترش بدن و امکانات خیلی بیشتر ولی فعلا این مدتیه که تعطیل هست آقای هدیتی سلام لطفاً از آقای دکتر جنیدی دوست داشتنی بپرسید چرا فردوسی در دا دا داستان مزدک دچار تناقض است در ابتدا او را انسانی صاحب خرد و مثبت معرفی می و در انتها می گوید سر مرد به دین نکوسار باد سر مرد بهدین. بهدین نکوسار باد آهنگر از دسفول درود بر دسفول و آهنگران ایران که فرزندان هستند توجه بفرمایید که فردوسی آینه تمام نمای دانش و خرد ایران دو به دو گونه سخن نمیگوید فردوسی از مزدک با تجلیل یاد کرده منطقه خ... نویسان و شهانام خانان و او شپ و استادانی که رو شهانامه داوری میکنن متوجه نمیشن که فردوسی با چه تجلیل از مزدک یاد کرده من میگه این بیت رو به بی رو میخونم می‌پیشونت از راستی پنج چیز که دانا بر پنج نفسود نیز کجا خشم و کین است و رشک و نیاز به پنجم که گردد روی چیره آز هیچ کس متوجه نشد که این دانایی که فردوسی گفته یعنی در شاهنامه اصلی بوده که فردوسی ترجمه کرده مخصوص زرتوشت به دلیل اینکه موبدان ما در zaman باستان در دین زرتشت نو آواری کردند که امروز اونو به عنوان نو زرتشتی میخونن و مزرک به اون هنگام خواست که اندیشه های خود زرتشت رو دو مرتبه در حقیقت روان بکنه در ایران و این پنج دیوی که آز و نیاز و خشم و رشک و کین بوده باشه این رو از بین ببره و سر مایه اینا که نیاز هست باید نیاز از بین بره و مزدک برای این بلند شد که دوباره اندیشه زرتشتی رو اندیشه کوهن زرتشتی رو تازه بکنه که خب دستگاه موادان ما نگذاشتن و اون و متاسفم که این بیت, این بیت رو هیچکس ندیدم که توجه بکنه وش که این بود که مزدک میگوید که در باره زن و خواسته زن و خ... زن و خانه و مال بخشیده نیست بخشیده یعنی تقسیم شده به, به طور ما مادر گفتاری که گیو هفته پیش خوندیم گیو نه. نه در داستان رفتن گیو و کدستانه به تورانه که رستن میگه که این خانه زن خانه بخشیده نیست یعنی خونه من از خونه تو جدا نیست ما هنوز هم میگیم که خونه ما, از خونه شما جدا نیست یه خونه خودتونه. زن و خانه و مال بخشیده نیست یکی میتونه مثلا فرض کن که باغهای فراوان و زمینهای فراوان و کارگران و فراوان داشته باشه هزار نفر هستن که اینا نه زن دارن نه بچه دارن نه امکان دارن نه خونه دارن نه مال مزدک میگه بخشیده نیست انبوه این خوانندگان و, و استادان همه خوندن زن و خانه و مال بخشیده نیست ببینید چه توهین بزرگی بهت مزدک کردن نا آگاه نه اندیشه شاهنامه ایران با این که کس را مخالفت کرد کشت اونها رو به فجیه ترین وجه کشت در جهان هیچ کس کسی رو اونطور نکشته اینها رو کشت با اینها شاهنامه ایران در مورد مزدک احترامی نکرده مزدک مرد بزرگی بود و این چیزی هم که که بعدهایی چست بودن که مزدکیان زن رو شراکت دارن اینا همه بر اثر اینا و ندانمکاریه البته به مردم ایراد نیست به کسانی که میگن ما استاد هستیم این بیت رو نتونستن بخونن زن و خانه و مال بخشیده نیست مزدک مرد بزرگی بود که به توته کسرا و همیاری سازمان و ما او را از بین بردند و ایران انقدر ضعیف شد که چندی نپایید که زیر پای مهاجمان جان خود شد از دست داد. با درود به یزدان پاک نمیدانید امسال با چه شور و حالی داستانهای شاهنامه را تدریس میکنم. این, این تغییر را مدیون شما هستم. خدا بند را شاکرم و سپاسگذار شما. No. من پیشتر از خرداد یک دبیری از اخواز یا رو ملاقات کردم که ایشون به بنیاد نشابه اومده بود ایشون به من گفتن که من روزای یک شنبه به شاگردای خودم تکلیف میدم که این برنامه رو گوش بکنم و فردا ازشون پستش میکنم و بر اساس اون بهشون نمره میدم یعنی باید دبیران ادبیات این کارا را بکنند به امیدی از آن هر جا که هستید شاد باشید و با شاهنامه بزییید خب بریم دنبال داستان رستم و ش... البته الان موسیقی میشنبیم بعد از اون استاد خسته شده من خسته نمیشم شنونده خسته شده چه لیه صحبت بخونم باز همون شما میخواد من صحبت کن چه که دیگه صحبت بخونم نه رفتی درو خونم نه منظوره میدونه الان نه یه موسیقی میشنبیم بعد داستان رستم و سخرب و کیکاوس نامه کیکابوس, کیکابوس خواسته کیکابوس در مهستان به مطرح رفتن of Stamblida. Thank wow. you. اگر بیاد داشته باشید که در جلسه پیشین پس از اینکه سه روز مهمانی کرد از گیو حرکت کردند به طرف ایران و رسیدن به دربار کابوس گرازان به درگاه شاه آمدند گشاد دل و نیکاه آمدند چون رفتند و بردند پیشش نماز برا شفت و پاسخ نداد هیچ باز یکی بانک برزد به گیو از نخست پس آنگاه شرم از دو دیگه بشست که روستم که باشد که فرمان من کند پست و پیچد ز پیمان من بگیر و ببر زنده بردار کن اوزو نیز با من مگردن سخون ز گفتار او گیو را دل بخست که وردی سوی او بدانگونه دست یعنی کی بود که میتونست که دست روستن بگیرد زنده بردار کن بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده برکش به دار. نمونه همه برکن به دار داره برکن به دار نادرسته. ما امروز امروزم اگر بگیم نمیگیم به کن میگیم به دار کشید یا به دار کشید. و نمونه رو من پیشنهاد کردم برکش درسته. خود از جای کاووس کاووس کهی برفروخت بر آتش زنه ای. به شد دست تهنتن گرفت به منده مونده پرخواه شگفت که از پیش کاووس بیرون برد. مگر کندران تیزی افزون برد. افسوننی چارگری. امروز مفهوم عوض شده. تهنتن برسوخت با شهریار که چندین مدار آتشن در کنار. همه کارت از یک دگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر است تو سهراب را زنده بردار کن، برای و بدخواه را خار کن، به شد،, شد به خشم و برای به رخش، منم گفت شیروژن و تاج به ایرانیان گفت سهراب و گرد، بیاید نماند بزرگ و نخورد، شما هر کسی چاره جان کنید خرد را به کار پیچان کنید به ایران نبینید از این پس مرا شما را زمین پر کرکس مرا یعنی مثل کرکسی که به آسمان پرواز میکنه از شما دور شد این اینجا رایزنی در انجمن مهستان ایرانه غمی شد دل نامداران همه که رستم شبان بود و ایشان رمه به گودرز گفتند که این کار توست شکسته به دست تو گردد درست. سفهبت جز از تو سخون نشنود. همی بخت ما زین سپس بغنود. به نزدیک اون شاه دیوانه رو از این در سخون یاد کن نه و به نه. انجامن معیستان بی حضور شاه. سفهدار و گودرز کشواد رفت به نزدیک خسره و خرامی تفت به کاووس کی گفت رستم چه کرد که ایران براوردی امروز گرد. کسی را که جنگی چو رستم بود، بی آزار و کم بود. چو بشنید گفتار و گودرز شاه به دانست دارد آین و را. پشیمان به شدزان کجا گفته بود به بیهوده با وی برا شفته بود به گودرز گفت این سخن در است لب پیر با پند نیکوتر است در زبان لوری هنوز یک داستان که ما میگیم حالا فعلا میگیم ضرب و مثل که نادرسته مثل هست که لب پیر پند از لب پیر بقیه نمیگم لورا میدونن که میمه دیگه چی هست پس گودرز گفت این سخ... سخون درخور است، لب پیر با پند نیکوتر است. خردمند باید دل پادشا که تیزی و تندی نیارد بها شما را بباید بر او شدن به خوبی بسید داستان ها زدن سرش کردن از تیزی من تهی؟ نمودن به دو روزگار بهی چو گودرد برخواست از پیش اوی سوی پهلوان تیز بنهاد روی برفتند با او سران سپاه پس در گرفتند راه چو دیدند گردگر پیلتن همه نامداران شدند در جمن ستایش گرفتند بر پهلوان که جاوید بادی و روشن روان روشن و روان نیزنده. آنو روان یعنی کسی که مرده و روانش پایدار هست. روشن روان یعنی زنده. تو دانی که کاووس را مغز نیست. به تیزی سخون گفتنش نغز نیست یا ز تیزی پیشنهاد کردم من. به شد همانگه پشیمان شود. به خوبی ز سر باز پیمان شود. تهمتن گراغ زوگرده گردد زشاخ مر ایرانیان را نباشد گناه. همو زآن ها پشیمان شده است ز تندی بخواید همی پشت دست چون این پاسخ آورد باز که هستم ز کاووس بی بینیاز مرا تخت زین باشد و تاج ترگ قوا جوشن و دل نهاده به مرگ چرا دارم از خشم کاووس باک چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک ز گفتار چون سیر، البته تلفظ این سر هست و در خورستان هم سر سیر میگن. سیر دارو هم گیاه هست. و تلفظ درستش سر از گفتار چون سیر شد تن تن چون این گفت گودرز با پیلتن گودرز رئیس انجامن مهیستانه. از آشفتن شاه و پیکار و او ندیدم به درگاه بر گفت گوی. ز سهراب یل رفت یکسر سخون چون این پشت ور شاه و ایران مکن یعنی کاری که کاووس کرد در انجمن مهیستان ایران در قیاب کاووس فقط سخن از سهراب بود پشت به مردم ایران نکن تو به کاووس کار نداشاش به ایران کار داشته باش چون این برشده نامتن در جهان بدین باز گشتن مگردان نهان به رستن بر این داستان ها بخاند تهمتن چو بشنید خیره بماند از آن ننگ برگشت و آمد به راه گرازان و پویان به نزدیک شاه چو شهر مرور را دید بر پای خواست بسی پوزشن در گذشته بخواست من دویم بلند نمی شده فقط پازشا برای رستم بلند می شده برای کسی بلند نمی شدن بهترامو چوش همرو را دید بر پای خواست بسی پوزش هم گذشته بخواست که تندی مرا گوهر است و سرشت چنان روست شاید که یزدان بکشنی یعنی من گناهی ندارم تقصیر ندارم من قول خراسان مشوبریا ورخوی ورخویم یعنی همیشه عصبانی هستم همیشه خوی بد دارم و رفروخ هستم همواره از این ناسگالیده بدخواه نو دلم گشت باریک چون ماه نو. بدین جستن تو را خواستم چو دیر آمدی تیزی آراستم.